دوستان گلم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ضمن بررسی عهد جدید، نامه‌های پولس رو پشت سر گذاشتیم و امروز ما به بررسی شاهکاری اسرارآمیز شروع می‌کنیم. محققین بر سر اینکه چه کسی این رساله رو نوشته اختلاف نظر دارند. عده‌ای تصور می‌کنن پولس نامه رو نوشته، اما ما مطمئن نیستیم که کی نامه رو نوشته. و از کجا فرستاده راستش مطمئن نیستند که این حتی یک نامه باشه علیرغم بر سردرگمی هایی که پیرامون کتاب عبرانیان هست اما همه به اتفاق معتقدند که اون نامه با شکوهیه معلم ما به اون شاهکار اسرارآمیز نام داده و در درس امروز ما شروع به بررسی این کتاب مهم کنیم. پس بیاید به معلممون ملحق بشیم مقدم شما را به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس گرامی می‌داریم. این اولین جلسه از بررسی کتاب ابرانیان هست که من به اون شاهکار اسرارآمیز میگم. این شاهکار با این آیات شروع میشه. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود او است و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلانش است. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود نامی که به او داده شد از نام آنها برتر می باشد. در بررسی کتاب مقدس بعد از نامه های پولوس به کتاب ابرانیان می رسیم بعد از پایان بررسی نامه های پولوس به بررسی رسالات عمومی شروع می کنیم از این جهت به این رسالات عمومی می گیم چون که نویسندگان اونها افراد مختلفی هستند. این رسالات مانند رسالات پولس از جمله رومیان، قرنتیان و افسوسیان خطاب به کلیساهای خاصی نوشته نشدم. یکی از دلایلی که چرا این کتاب میز هست، اینه که ما نویسنده اون رو نمی‌شناسیم. بسیاری بر این هستند که پولس اون رو نوشته، اما محققان زیادی معتقدند که پولس این نامه رو ننوشته. ملاحظه میکنید که اولین کلمه این نامه مانند روال نامه های پولس نیست. وقتی اونها در اون ایام نامه مینوشتند در پایان نامه نامشان را نمینوشتند. چون نامه ها در اون ایام به شکل تومار بود و شما باید تومار رو تا آخر باز می کردید تا قبل از اینکه نامه رو بخونید و بفهمید نامه از طرف کی هست. به نامه نام نویسنده معمولاً در اول نامه نوشته می شود. این نامه از این جهت هم اسرارآمیز است هست که چون فرم نوشتاری اون واضح نیست. ملاحظه می کنید که در اونجا سلام و تهیتی هم وجود نداره. اون دقیقاً اینطور شروع میشه. خدا در ام قدیم، در اوقات بسیار و به مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است ما یقینا نمیتونیم تشخیص بدیم که این نامه خطاب به چه کسانی نوشته شده تنها چیزی که مشخصه اینه که نامه خطاب به مسیحیان یهودی نوشته شده منظورم ایمانداران موسوی هست، مثل رسولان و بسیاری از ایمانداران در کلیساهای های اولیه. اونها یهودی بودند، اما ایمان داشتند که ایسای مسیح همان مسیح های معود هست. از محتویات کتاب میفهمیم که یهودیانی که این نامه خطاب به اونها نوشته شده در جفا هستند. همینطور میدونیم که دست کم بعضی از این یهودیان از نجات خودشان اطمینان نداشتند. از متن کتاب میتونیم بگیم که برخی از این یهودیان گام ایمانی بر نداشته بودند و از این خط عبور نکرده بودند که متعهد به ایمان به عیسی مسیح به عنوان مسیح ها باشند بر اساس همین چیزها هست که ما از اونها اطلاعاتی داریم همینقدر میدونیم که اونها ایمانداران یهودی معتقد به مسیح ها هستند که تحت آزار قرار دارند و بسیار دلسرد شدهاند. اونها به تشویق و اطمینان نیاز داشتند بعضی از اونها لازم بود که نصیحت بشن تا باور کنند که ایسای مسیح همان مسیح های آنها هست. بعضی از محققین معتقدند که این ایمانداران یهودی که نامه ابرانیان خطاب به اونها نوشته شده همون یهودیان تحت جفا در اورشلیم و یهودیه بودند که پولس بسیار نگرانشان بود. یادتون هست که پولس چقدر نگران اونها بود و هدایایی برای یهودیان تحت آزار در اون منطقه از دنیا جمع‌آوری کرد. بعضی محققین معتقدند که این کتاب خطاب به اونها نوشته شده و برخی از محققین معتقدند که یهودیانی که این کتاب خطاب به اونها نوشته شده در زمان جفاها در انتاقی زندگی می کردن. وقتی مسیحیان در اورشلیم و یهودیه و حوالی اون شهرها مورد آزار قرار گرفتند، بسیاری از ایمانداران به مسیح به انتاقی فرار کردند و انتاکیه تبدیل به مرکز بزرگی برای ایمانداران یهودی گردید. بسیاری از محققین معتقدند که این نوشته ها خطاب به یهودیانی نوشته شده که در انتاکی زندگی می‌کردند. در حالی که ده دیگر از محققین معتقدند که این نامه خطاب به مسیحیانی که در روم زندگی می‌کردند نوشته شده. ما به طور قطع نمی‌دونیم که این نامه خطاب به چه کسانی نوشته شده و در کجا زندگی می‌کردند. دلیلی که بسیاری از محققین این نظریه رو رد می‌کنند که پولس محله‌ی این نوشته هست یک چنین چیزیه. اولاً در نامه که پولس به عنوان یک عالم یهودی تبدیل یافته نوشته او کاملاً به زبان ابری مسلط است. حدود 200 سال قبل از مسیح تمام کتاب های ابری عهد قدیم به یونانی ترجمه شد. این ترجمه عهد قدیم به سپتواجنت معروف است. این نشون میده که در ایام پولس تمامی کتاب های عهد قدیم نه تنها به زبان ابری بلکه به زبان یونانی نیز موجود بود. وقتی پولس از عهد میکنه چنانکه به کررات این کار رو کرده الگوی او این بود که از متن ابرانی عهد قدیم نقل قول می کرد. اما کسی که کتاب ابرانیان رو نوشته از ترجمه یونانی یا سپتوژنت نقل قول کرده رد پای زبان یونانی در نامه عبرانیان به وضوح به چشم میخوره؟ تنها به همین دلیل بسیاری از محققین معتقدند که کسی که این کتاب رو نوشته یا شخصی یونانی بوده و یا یهودی بوده که به شدت تحت تاثیر فرهنگ یونانی قرار داشته. وقتی گرامر این کتاب رو با رسالات پولس مقایسه می‌کنید، بسیاری از محققین معتقدند که گرامر این کتاب سبک نگارش پولس نبوده. دلیل دیگری که برخی از محققین باور ندارند که پولس این نامه رو نوشته، این هست که کسی که این نامه رو مینوشته، مانند پولس یک نابغه الهیاتی نبوده. پولس یکی از محققین و یکی از متفکرترین اشخاص زمان خودش بوده. وقتی نویسنده این کتاب در مورد خیمه پرستش در بیابان صحبت میکنه اسباب و وسایل داخل خیمه رو در جای درستی شرح نمیده اون مذبه بخور رو در جای اشتباهی قرار میده پولوس هرگز چنین اشتباهی مرتکب نمیشه شاید بتونیم این رو از مردی مثل آپولوس انتظار داشته باشیم آیا آپولوس رو به خاطر میارید وقتی آپولوس وارد شد پرسیکلا و آکیلا فهمیدند که او به برخی تعالیم نیاز داره چون او به لحاظ الهیاتی بالغ نبود، بنابراین مردی مثل آپولوس میتونسته مذبح بخور رو در جای اشتباهی قرار بده. برخی از محققین معتقدند که بارنابا این کتاب رو نوشته و برخی ها معتقدند شاید پزشک محبوب لوقا این کتاب رو نوشته باشه. چون لوقا محققی بود که یهودی نبود. برخی از محققین معتقدند که به خاطر الهیات این کتاب پولس اون رو ننوشته. ایمان یکی از موضوعات اساسی این کتاب هست. اما عادل شمرده شدگی توسط ایمان چیزی نیست که ما انتظار داشته باشیم از پولس بشنویم. از اونجایی که پولس بر عادل شمرده شدگی توسط ایمان تاکید میکنه، مخصوصاً در رومیان و غلاطیان، شما فکر می کنید که در نوشتن یک نامه یا کتاب که خطاب به ایمانداران یهودی هست، پولس یقینا باید بر عادل شمرده شدگی توسط ایمان تاکید میکرد. اما عادل شمرده شدگی توسط ایمان روی کردی برای ایمان در این کتاب نیست در بین تمام دلایلی که محققین ارائه کردند که چرا این کتاب رو پولوس ننوشته؟ شاید قویترینشون این یکی باشه. در باب اول نامه پولوس به غلاطیان پولوس بر این حقیقت تاکید میکنه که هر چیزی رو که با مادرمیون میذاره از مکاشفه مستقیم از خود ایسای مسیح کسب کرده یادتونه که پولوس چطور بر این نکته در باب اول غلاطیان تاکید میکرد پولس مؤکدانه اعلام میکرد که هر چیزی که می نویسه و موعظه میکنه مستقیما از عیسی مسیح در صحرای عربستان دریافت کرده. او این ادعا رو با جسارت میکرد. پولس به ما میگه یا باید به او باور کنیم یا او رو دروغگو بنامیم. چون او میگه وقتی این رو میگم دروغ نمیگویم. وقتی ما باب اول گلاتیان رو بررسی میکردیم من گفتم که شما یا باید پولس رو دروغگو بنامید و یا یک خادم بزرگ و بزرگترین معلم شبان الهیدان و نویسنده کلیسای مسیح بپذیرید که بیش از نیمی از عهد جدید رو نوشته کسی که کتاب عبرانیان رو می نویسه چیزی شبیه به آن چه دکتر لغا در انجیل لغا باب یک آیه چارده گفته به ما میگه چطور ما میتونیم نجات پیدا کنیم اگر ما نجاتی رو انکار کنیم که در ابتدا توسط خود خداوند اعلام شد و توسط کسانی که مستقیما آن را شنیده بودند برای ما مسلم شد این روشی بود که لغا انجیل لغا را شروع کرد به این دلیل که خیلی ها تصور میکنند که شاید لغا نویسنده ابرانیان باشه الزاما اینطور نیست اما یک چیز حتمی هست نویسنده کتاب ابرانیان یکی از شاهدان عینی وقایعی نبوده که در اناجیل اتفاق می‌افتد او مثل پولس ادعا میکنه که شخصا عیسی رو دیده و یا از خود عیسی مسیح تعلیم گرفته در حالی که پولس رسول موکدا اعلام میکنه که مکاشفه شخصی از عیسی مسیح داشته. محققین حق دارند که بپرسند چطور امکان داره نویسنده عبرانیان پولس باشه؟ بعضی ها میگن پولس عمداً تمام این چیزها رو مخفی کرده. در نامه عبرانیان اگر اولین کلمه پولس بود، اونجا یهودیان زیادی بودند که از پولس نفرت داشتند و دنباله نامه رو هرگز نمی‌خوندند. اما وقتی به محتوای این نامه می‌رسید، متوجه میشید که نویسنده آشکارا برای ایمانداران یهودی مینویسه که به خاطر ایمانشان در جفا هستند. پس استدلالی که پولو سعی می‌کرد یهودی بودن خودش را پنهان کنه، استدلالی ضعیف است. کتاب ابرانیان این واقعیت رو نشون میده که نویسنده انسانی کتاب مقدس مسئله جدی در مورد کتاب مقدس نیست. مثلا در کتاب عبرانیان بارها از عهد قدیم نقل قول شده. وقتی که در کتاب عبرانیان از عهد قدیم نقل قول شده نویسنده ابرانیان می میگوید خدا گفته در جاهای خاصی وقتی نویسنده ی کتاب از موسی نقل قول میکنه و یا از داوود نقل قول میکنه میگه خدا گفته من فکر میکنم نویسنده ی این کتاب سعی داره به ما نشون بده که کتابهای باستانی کتاب مقدس به این دلیل مهم هستند که خدا اونها رو نوشته نویسنده ی انسانی کتاب اهمیت چندانی نداره پس ما باید با پدران کلیسای اولیه موافق باشیم که تمامی استدلالهایی رو که در مورد نفی نوشته شدن این کتاب توسط پولس رو خوندند و به نشانه ای دست نیافتند که چه کسی این کتاب رو نوشته و در نهایت گفتند فقط خدا میدونه که چه کسی کتاب ابرانیان رو نوشته و این جایی که ما میتونیم بحث بر سر یافتن نویسنده این کتاب رو کنار بذاریم خود کتاب به ما نشون میده که واقعا اهمیتی نداره که چه کسی این کتاب رو نوشته همونطور که در بررسی یک به یک کتاب کتاب مقدس دیدیم مهمترین مسئله اینه کتاب چی میگه؟ منظورش چیه؟ و برای من و شما چه مفهومی داره؟ مهمترین مسئله در مورد کتاب ابرانیان حقایقی هست که این کتاب تعلیم میده و کاربرد اون حقایق در زندگی من و شما هست خب برگردیم به اصل مطلب کتاب ابرانیان یک شاهکار اسرارآمیز هست به دلایلی که برشمردیم اون کتابی اسرارانگیز هست وقتی که به محتوای کتاب میرسیم متوجه میشید که اون یک شاهکاره کتاب ابرانیان هم مانند کتاب رومیان از ابتدا تا انتها یک استدلال هست کتاب رومیان به خاطر منطق الهامی و به خاطر استدلال قابل درکش در مورد عادل شمرده شدگی توسط ایمان بسیار جذاب هست کتاب رومیان یک کتاب الهیاتی هست کتاب ابرانیان هم کتابی الهیاتی در مورد ایسای مسیح است ما دیدیم که انجیل یوحنا در عهد جدید بر ایسای مسیح تاکید داره شاید بگید انجیل یوحنا عیسی مسیح رو به صورت بشارتی به ما معرفی میکنه وقتی انجیل یوحنا رو مطالعه میکنید میتونید این سوالات رو بپرسید عیسی کیه ایمان چیه زندگی چیه این نقطه تمرکز یوحنا هست وقتی یوحنا انجیل چهارم رو می تمامی بابها به عیسی مربوط میشن یوحنا به شما میگه که عیسی کیه و اون میخواد تمام مطالبی رو که درباره عیسی به شما میگه باور کنید چون در این صورت نجات خواهید یافت و زندگی ابدی خواهید داشت بنابراین انجیل یوحنا عیسی مسیح رو به صورت بشارتی معرفی میکنه نامه پولس به کولوسیان کتاب دیگری هست که حول محور عیسی نوشته شده اما نامه پولس به کولوسیان عیسی مسیح رو به لحاظ سرسپردگی معرفی میکنه. کتاب عبرانیان ایسای مسیح رو به لحاظ الهیاتی معرفی میکنه. کتاب عبرانیان ایسای مسیح رو به عنوان مسیحای موعود معرفی میکنه که عهد قدیم آمدنش رو پیشگویی کرده بود. به عنوان خداوند او در عهد جدید آشکار شده و به عنوان شاه شاهان در آینده خواهد آمد و تاریخ بشریت رو خاتمه خواهد داد. من شما رو به چالش میکشم. آیا کتاب مقدستون رو میخونید که عیسی رو ببینید؟ اگرچه انجیل یوحنا، رساله کولوسیان و رساله ابرانیان کتاب بشارتی، تعهد و الهیاتی در مورد عیسی مسیح هستن، همانطور که خداوندمان در باب 24 لغا به شاگردان گفته، همه کتاب های کتاب مقدس درباره عیسی مسیح هستند بنابراین ما باید هر کتاب از کتاب مقدس رو در جستجوی عیسی بخونیم. وقتی آماده میشید کتاب عبرانیان رو بررسی بکنید این کتاب را سمیمانه برای دیدن عیسی بخونید وقتی کتاب ابرانیان رو میخونید، از روح القدس بخواهید که کمک کنه به روشی خاص و تازه عیسی مسیح رو ببینید وقتی کتاب ابرانیان رو میخونید، باید بفهمید که تمام پیغام و بحث این کتاب در مورد عیسی مسیحه اگر بخواهید پیغام و بحث این کتاب رو درک کنید سه کلمه کلیدی هست که میتونه شما رو برای درک بحث این کتاب راهنمایی کنه اما قبل از اینکه بگم اون سه کلمه ی کلیدی چی هستن باید چیز دیگه ای رو بهتون بگم از اونجایی که کتاب ابرانیان از ابتدا تا پایان یک بحث داره توصیه می‌کنم همونطور که در مورد کتاب رومیان گفتم مطالعه این کتاب رو در یک جلسه به پایان ببرید مطالعه کتاب ابرانیان رو به جلسات کوتاه موکول نکنید رادیو رو خاموش کنید تلویزیون رو خاموش کنید، موبایل هاتون رو کنار بذارید و حداقل سه ساعت زمان برای کتاب ابرانیان بذارید. یک عصر رو برای مطالعه این کتاب از ابتدا تا انتها اختصاص بدید و منطق الهامی اون رو درک کنید. هر کسی که این کتاب رو نوشته، یک محقق الهام گرفته و نویسنده نویسنده‌ای زبردست بوده که عهد قدیم رو به خوبی درک میکرده و آنچه را عهد جدید در مورد عیسی مسیح گفته میدونسته. یکی از دلایلی که گفتم این کتاب یک شاهکار هست به این دلیل که این کتاب سهم بسزایی در شورای کتاب مقدس داشت. هر کتابی که در کتاب مقدس قرار گرفته به این دلیل هست که سهمی در محتوای الهامی و کاربردی کتاب مقدس داشته. سهم اساسی کتاب ابرانیان این هست که این کتاب نوشته الهیاتی در مورد عیسی مسیح است. سهم دیگری که این کتاب در کتاب مقدس داره این هست که بیشتر از هر کتاب دیگری در کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید رو به هم پیوند داده. به چه دلیل امروز ما حیوانات رو قربانی نمی کنیم؟ چرا قوم خدا قربانی کردن حیوانات رو برای خداوند متوقف کردند؟ چرا ما مانند مردم عهد قدیم از شریعت موسی پیروی کنیم؟ چرا زندگی به عنوان یکی از افراد قوم خدا بعد از صلیب مسیح با قبل از آن متفاوت است؟ چطور همه این چیزها با هم جور درمیاد؟ چطور عهد قدیم و عهد جدید با هم مرتبط میشن کتاب عبرانیان بیش از هر کتاب دیگری در کتاب مقدس به اون سوالات پاسخ میده کتاب ابرانیان دو عهد رو با هم پیوند میده همونطور که قبلا اشاره کردم وقتی که کتاب عبرانیان رو مطالعه میکنید، دنبال موضوع کتاب بگردید سه کلمه هست که میتونه شما رو راهنمایی کنه اولین کلمه بهتر هست دومین کلمه باور هست و سومین کلمه زنهار هست. اولین موضوع در بحث کتاب ابرانیان در مورد عیسی این هست. عیسی مسیح بهتره. عیسی مسیح بهتر از انبیا هست. چون در ایام قدیم خدا توسط انبیا با پدران ما صحبت می کرد، اما در این او آخر او توسط پسرش با ما صحبت می کنه. مکاشفه و پیغام خدا توسط پسرش بهتر از پیغام و مکاشفه خدا توسط انبیا هست. نویسنده خطاب به یهودیان می نویسه و میخواد به این یهودیان بگه ایسای مسیح بهتر از تمامی چیزهایی هست که شما بهشون احترام میذارید. شما واقعا انبیا رو گرامی میدارید. شما ارزش زیادی برای انبیا قائلید. ایسای مسیح نبیی هست که سر همه انبیا هست. او نبی انبیا هست. ایسای مسیح بهتر از انبیا هست. چون مکاشفه و پیغام او بهتر از مکاشفه و پیغامی هست که توسط انبیا اومده. در دو باب اول این کتاب نویسنده این کتاب میگه عیسی مسیح بهتر از فرشتگانه یهودیانی که نکتبین و افراطی بودند مثل فریسی ها به فرشتهها اعتقاد داشتند یهودیان ارتودکس به پدیده ماورالطبیعه اعتقاد داشتند اما صدوقی ها به ماورالطبیعه اعتقاد نداشتند کسی که برای این یهودیان مینویسه برای این ایمانداران و ارتودکس یهودی مینویسه عیسی مسیح بهتر از فرشتگانه دو باب اول این کتاب رو بخونید و راههای مختلفی رو که نویسنده به یهودیان میگه ملاحظه کنید. او میگه عیسای مسیح از فرشتگان بهتره. به نظر نمیرسه که نویسنده از این واقعیت دفاع کنه که فرشتگان وجود دارن. او فقط اونجا به فرشتگان اشاره میکنه که میگه عیسی مسیح بهتر از فرشتگانه. البته یهودیان به موسا هم احترام قائل بودن. موسا هنوز هم برای یهودیان محترم هست. بنابراین این نویسنده در ادامه بحثش میگه ایسای مسیح بهتر از موسا هست. خانه ارزشمند هست، اما سازنده خانه ارزشمندتر از خود خانه است موسی خانه را بنا کرد، قوم یهودی رو اما عیسی مسیح پسری هست که در اون خانه ساکنه. نظر بر این هست که موسا بنیانگذار قوم اسرائیل و خانه هست. اما ایسای مسیح بهتر از موسا هست چون که پسر بهتر از کسی هست که خانه او را ساخت. بعد نویسنده می نویسه عیسی مسیح بهتر از یوشه است چون که این یهودیان یوشع رو گرامی داشتن یوشع بنی اسرائیل رو به سرزمین وعده هدایت کرد و به اونها آرامی داد اما عیسی به اونها آرامی داد که بسیار فراتر از آرامی بود که در زمان ورود به سرزمین وعده یافتند بعد نویسنده میگه عیسی مسیح بهتر از تمامی این کاهنین هست این یهودیان میدونستند که وقتی او به کاهنین اشاره میکنه منظورش چی هست؟ کاهنانی بودند که از نسل هارون بودند و کاهنانی بودند که از نسل لاوی بودند این یهودیان غرق در کهانت و سیستم قربانی مربوط به کهانت بودند در ابتدای باب پنج نویسنده میگه عیسی مسیح بهتر از تمامی اون کاهنین هست و وقتی او به كهنَت میپردازه به عهدها اشاره میکنه یک عهد عهد نوح بود و عهدی بود که با ابراهیم بسته شده بود و عهدی بود که با موسی بسته شده بود خدا با داوود هم عهدی بس. خدا عهدهای زیادی بسته اما نویسنده میگه عیسی مسیح بهتر از تمامی عهدها هست. بعد نویسنده ابرانیان به خیمه پرستش در بیابان اشاره میکنه که ما در بررسی خروج و لاویان اون رو ملاحظه کردیم. همونطور که انتظار میره نویسنده میگه عیسی مسیح بهتر از اون خیمه پرستش هست. نویسنده ابرانیان چیزهای حیرت در مورد خیمه پرستش میگه. خیمه پرستش مدرسه آمادگی برای اونها بود و به اونها تعلیم میداد که چطور به خدای قدوس نزدیک بشن و او را بپرستند معبد سلیمان با بهرهگیری از همان الگوی خیمه پرستش ساخته شد تمام پرستشا و تعالیم در خیمه پرستش و معبد سلیمان یکی بودند نویسنده به قوم یهود میگه گوش کنید اون خیمه پرستش و اون معبد سلیمان و تمام الگوهای پرستش که در آنجا بود تصویر و الگویی از چیزی بود که در بود آسمانی از اون خیمه و معبد وجود داشت خیمه پرستش حاصل کار دست انسان نبود در اون خیمه پرستش کاهن بره یا حیوانی رو برای قربانی زب می کرد. بعد کاهن حیوانات قربانی شده رو روی مذبح برونزی قرار میداد و بعد میرفت و طی آدابی خودش رو در حوزچه تطهیر میشست و تطهیر می کرد و بعد از اون به طور شایسته وارد خیمه می شد. در خیمه، کاهن به شمدان در سمت چپ و به میز نان تقدمه در سمت راستش نگاه می کرد. در حالی که کنار شمدان ایستاده بود، کاهن از خدا برای مکاشفه کلامش که به اون گناهکار داده شده تشکر میکرد. بعد در کنار میز نان تقدمه، کاهن از خدا به خاطر فراهم کردن نان روزانه برای اون گناهکار تشکر می کرد. بعد از اون کاهن مستقیما به سمت مذبح بخور میرفت. در اونجا کاهن دعا می کرد و برای اون گناهکار که در درگاه خیمه ایستاده بود شفاعت می کرد. سالی یک بار کاهن اعظم وارد درونی ترین قسمت خیمه میشد که به اون قدس القداس می گفتن. تمامی قوم در بیرون اطراف خیمه پرستش اجتماع می کردند. کاهن اعظم خون قربانی رو می گرفت و به آن سوی پرده و به قدس القداس وارد می شد. و اون خون رو به عنوان کفاره گناهان تمام قوم تقدیم می کرد نویسنده ابرانیان می گه تمامی اینها الگویی از چیزی بود که وقتی عیسی مسیح بر صلیب مرد در آسمان اتفاق افتاد وقتی عیسی مسیح بر صلیب مرد مانند این بود که کاهن اعظم بود و برای گناهان تمام دنیا شفاعت می کرد وقتی عیسی مسیح به نزد مذبح بخور رفع به عنوان کاهن اعظم برای یک گناهکاران تمامی دنیا شفاعت کرد او وارد قدس لغداس، آن خیمه پرستش آسمانی شد که با دست بشر ساخته نشده بود عیسی در آنجا خون حیوانی را تقدیم نکرد او خون خودش را نثار کرد از لحظه ای که عیسی به عنوان کاهن اعظم ما این کار را انجام داد دیگر نیازی به قربانی کردن هیچ حیوانی برای گناهان مردم این دنیا نماند به این دلیل که عیسی مسیح خودش و خونش رو در آنجا تقدیم کرد قربانی عیسی مسیح جای تمام قربانی های دیگر رو در سیستم قربانی کاهنان گرفت چیزی که نویسنده میگه اینه که عیسی مسیح بهتر از اون خیمه پرستش در بیابان و بهتر از معبد سلیمان هست چون که عیسی مسیح تمام کارهایی رو که در خیمه پرستش و معبد سلیمان انجام میشد تکمیل کرد خب این خلاصه ای از بحث کتاب ابرانیان بود حالا متوجه میشید که چرا گفتم وقتی کتاب ابرانیان رو میخونید از روح القدس بخواهید که چشم و گوش و قلب شما رو باز کنه تا بتونید موضوع بحث این کتاب رو درک کنید وقتی که پروفسور دیک به دانشکده می رفت استادی برای کتاب ابرانیان داشت که خود او یک یهودی مسیحی شده بود او محقق بزرگی بود دکترای الهیات و باستان شناسی داشت او محقق بزرگ زبانشناسی بود و به تمام زبانهای سامی تسلط داشت. او به مدت یک سال و سه بار در هفته کتاب ابرانیان رو درس می‌داد. این سخت‌ترین دوره‌ای بود که پروفسور دیک گذرنده بود. اما از بسیاری جهات یکی از بهترین دوره‌های او هم بوده. وقتی که درس به پایان رسید، امتحانی بسیار سخت و وحشتناک پیش رو داشت. پروفسور دیک هرگز اون امتحان سخت رو فراموش نمی‌کنه. او سخت تلاش می‌کرد، چون که استادش به این معروف بود که بسیار سخت گیره و تکه کلامش این بود شما برای پیکنیک نیومدید. اینجا دانشکده است وقتی امتحان شروع شد استاد وارد سالن شد و روی تخت سیاه نوشت موضوع بحث کتاب عبرانیان رو بنویسید حداقل حد باید دو دفتر یادداشت رو پر میکردن. اون موقع چهار ساعت طول کشید تا پروفسور دیک دو دفتر رو پر کرد و وقتی تموم کرد پیش خودش فکر می خب دکتر فینبرک میتونی اون رو توی کتاب خوت او فکر میکرد که یک کتاب الهیاتی نوشته. او فکر میکرد استاد رو قانع کرده که موضوع کتاب عبرانیان رو کاملا درک کرده. مدتها گذشت و از نتیجه امتحانش خبری نشد. روزی استاد رو در راه رو دید و استاد او رو صدا کرد. دیک بیا اینجا. او گفت من تمام زبانهای اردو، ابری، سانسکریت و بسیاری از زبانهای دیگر رو مطالعه کردم، اما تا حالا چنین چیزی نخوندم. و ورقه امتحانیش را به او برگردوند. او گفت یادداشت‌های که زیر ورقه نوشتم بخون و بعد به دفتر من بیا در صفحه اول او با خط قرمز نوشته بود غلط املایی در صفحه دوم همو نوشته بود غلط املایی و در صفحه دوم اون نوشته بود دیکته شما افتضاحه بیا منو ببین او یادداشت‌های دیک رو توی کتابخونه نذاشته بود اما پروفسور دیک به شما میگه چیزی که او از اون درس یاد گرفته بود این بود که کتاب ابرانیان یک استدلال داره من پیشنهاد میکنم نماننده یک محقق اما با دقت و پشتکار به خودتون زمانی رو اختصاص بدید و در یک آخر هفته حداقل یک روز شنبه رو به مطالعه این کتاب اختصاص بدید و بعد ببینید آیا میتونید استدلال کتاب ابرانیان رو با جزئیات برای خودتون بنویسید من ازتون میخوام این کار رو بکنید چون میدونم این برکت بزرگی برای قلبتون خواهد بود تمام بحث کتاب ابرانیان در مورد عیسی مسیح است همونطور که تمام کتاب مقدس مربوط به او هست و تمام مفهوم نجات مربوط به او هست. اگر عیسی مسیح رو نمیشناسید کتاب ابرانیان رو مطالعه کنید. وقتی که کتاب ابرانیان رو مطالعه میکنید دعایی مثل دعای اون یونانیان بکنید که به فلیپ و آندریاس گفتند آقایان ما باید ایسا رو ببینیم. اینطور دعا کنید. خداوندا: من میخوام ایسا رو ببینم. بعد کتاب ابرانیان رو با اون دعا در قلبتون شروع کنید و وقتی که روح القدس عیسی را برای شما از کتاب ابرانیان آشکار میکنه قلبان برکت خواهید گرفت. از ماننده بقیه کتاب مقدس ابرانیانیز تماماً در مورد عیسی مسیحه کسی که بهتر از کاهنین، انبیا و فرشتگانه همونطور که معلممون گفت اگه میخوایم عیسی رو ببینیم تنها کاری که باید بکنیم اینه که به خدا هرگز رد نمیکنه. حضور شما در درس امروز برای ما باعث افتخاره و خوشحالیم که کلام خدا رو به همراه شما مطالعه کردیم. لطفاً طوری برنامه جزی کنید که در ادامه مطالعه این شاهکار الهیاتی با ما همراه باشید. فعلا خدا نگهدار و تا برنامه بعد دعا می کنیم شادی خداوند رو در پیروی از عیسی مسیح تجربه کنید.